بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد يقول المؤلف رحمه الله الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله وهو ثلاث مراتب الإسلام والإيمان والإحسان وكل مرتبة لها أركان فأركان الإسلام خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وحج بيت الله الحرام. فدليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأول العلم قائما بالقصد لا إله إلا هو العزيز الحكيم ومعناها لا معبود بحق إلا الله لا إله نافيا جميعًا ما يع جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه الله إن شاء الله أجرتني ملتقى إن جاف من خن مزمات تعرف تكتفون تصي إن شاء الله شهر شنب توزيع مديد ما أفلق قبل تحوط جادته هذا بحث إيمان أبو قذاروت ما إيمان أبو قذارك هذه وأن عبادته هي بداني وعبادته هي جوفتاري وعبادته هي قلبي از بحث خشوع و ترس از خدا و محبت تمام اینها و عبادات گفتاری مثل دعا کردن و اذکار عبادات بدنی مثل نماز و روزه بیاتون که است به عنوان یک قاعده کلی هم اینجا مؤلف آورده به سرمایه خداوند و ان المساجد لاله فلاتدعوا الله, الله احد مسجد مال لقدات لمصابه برای خدا باشه پس دعاتون هم باید برای خدا باشه همونطور که نمازتون برای خداوند این دو دو ادهای عبادت و مساله اونجا مفصل شرحش دادیم میمونه اصل دوم اصل اول شناخت خداوند و حقوق خداوند بر گردن ما داره اصل دوم شناخت دین اسلام دینی که خداوند تکلیف کرده بر ما مؤمنین بر ما مسلمانان دین اسلام دین اسلامی که ابراهیم علیه السلام و ما بعدش از پیامبران دیگه دستور به اون داده شده بودن ان الدين عند الله الاسلام هو سماکم المسلمین من قبل ابراهیم اسم رو گذاشت مسلمان دینش اسلام بود و همچنین نوسا و عیسی و دیگر پیامبران و خداوند دینشون اسلام بود دینی دین که خداوند انتخاب کرده دین اسلامه اسلام, اسلام به بچه عام داری حرچن که یک قسمتش اسلام بحث لغویش میاد بحث لغویش اسلام به معنی تسلیم شدنه وله له من في السماوات والارض طوعا و کرهن و الیهی یرجعون چه بخوام که نقاهیم تسلیم امر خدا عنی امر کونی خدا باشی باید باشیم این امر کونی هست ما باید تسلیم باشیم چه بخوایم چه نخواهیم باید بمیریم این دیگه باید تسلیم شده باشیم و حرفش دیگه از زمان امور دست ما نیست دست, دست فروردگانه که چطور ورق بزنه بختمون تسلیم شرعی هست اسلام شرعی هست اسلام به طور عامش اسلام شرعی به طور عامش تسلیم شدن در مقابل مقابل اوامر الهی هست به طور کلی اون اسلامی که خداوند ابراهیم را برای اون نوح را برای اون موسی را برای فرستاد، تسلیم اون در مقابل خداوند. این دین عامه به شکل ها، به شکل خاصش اسلام شرعی، دین اسلام که ما مکلف اون هستیم و غیر از این دین اسلام دیه، دین دیگری از دین یهودیت و نصرانیت خداوند از ما از ما نمیپذیره. همونطور که رسول الله صلی الله علیه و سلم ما یسمع بی من هذه الامه من یهودی ولا نصرانی ولم یعنی دفت آخه لا رو Weihn energies. کسی از این امت منظور از امت امت دعوت نه امت استجابت یعنی منظور کسانی که از این امت از این مردمان یعنی منظور کی میشنمن کسانی از مدعوین یعنی کسانی که از امتی که این سخن را میشنمن از اسلام میشنمن استجابت نمیکنن چون امت استجابت ما مسلمان هستیم که استجابت کردیم مخاطب ما نیستیم رسول الله صلی الله علیه و سلم این امت دعوت را اینجا توضیح میده کی هستن یهودیان او نصرانی یهودی نصرانی نمیشته ایمان به من نمیاره هرچند که دینشون اسلام بوده هم موسی علیه السلام هم عیسی ولی که دینشون دیگه ناسخ شده با دین اسلام دیگه خداوند غیر از این دین اسلام دیگه از کسی دیگه دین دیگری نمیپذیره و خداوند حکم کفرشون در قرآن داده لقد كفر الذين قالوا إن الله ثلاثه و کافر شدن اونهایی که گفتن خدا سه انها اونها به نص قرآن کافرن بله و من أهل کتابی لما يؤمن بالله از اهل کتاب هستن که ایمان به الله دارن و ایمان دیگر مسائل دارن بله مثل نجاشی سبب نزول داره و رسول الله صلی الله علیه و سلم حکم اسلام نجاشی رو چون اسلامش رو کرده بود چون عاجز بود از ابراز اسلامش بخاطر خاطر همین رسول الله صلی الله علیه و آله نجاشی نماز بخونه رسول الله صلی و آله اصحاب رو بیرون بردند و روش نماز غایب خون. به یک مسلمان فئن اخا لکم قد توفی برادری از برادران شما وفات یافت رسول الله صلی الله و آله برایش نماز خواند. پس این آیه که سبب نزول داره نباید تعمیمش بدیم. مثل بعضی که تعمیمش میدن میگن که بله عموم یهود نصر هم نمیتون میگه کفارن. اونها خیر اگر اونها مسلمان بودن چرا ما دا دستور داریم؟ بمب... ده ده صد ده چه درست مسلمان مبارزه بکنیم عمر ان مقاتل الناس حتی يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله امرت ده صد ده که مقاتله بکنن بجنگیم باید با امه یهود و نصاره بجنگیم چرا چون امه اسلام نیستن چون از مصاد با مسلمان که درستی است که ما بجنگی این دستور خدامندی از پر رسول الله علیه و که به مبارزه بره با والا فرقشون با اهل کتاب با دیگر اقوام چیه اهل کتاب ازشون جهدی که درفت میشه با کشته نمیشه یک فرق تفاوتی هست ازدواج با آنها جائز شده غذاهاشون برای ما مباحب حلاله مادامی که از خوب نباشه از مشروب نباشه این خصوصیت هایی که شهر غده ولی این خصوصیت ها دلیل بر این نمیده که اونها حکم اسلام رو دارن روشو نماز بخونید ارث از اونها ببرید خیر دیگه این مسائل دیگه به اجمع امت دیگه این مسائل فقط بین مسلمان ها و یهود و نصارا در بحث ارث و میراث و نماز خوندن و دفع در مقابل اصلا یهود و نصارا شامل نمیشه پس اسلام به طور خاص دین اسلامی که رسول الله صلی الله علیه و وسلم ابلاغش کرده به ما حالا این دین اسلام تعریفش چیه این دین اسلام معرفت دین الاسلام چیه با عدلش میگه چون گفتیم تقلید در دین درستی این که بگیم که آبا اجداد ما نماز می‌خوندن ما نماز می‌خونیم نه اینطوری نیست قل هذه سبیل ادع الى الله على بصیره من اتبعني من و من من در دین در دینمون با بصیرت هستیم یعنی با چی با علم با بینش باز نه این که کورکورانه هر چی گفتن بپذیریم خیر دین ما دین تقلیدی نیست دین ما دین اتباع پیروی هست و جستجو هست و علم و دانش حال دین اسلام با دلیل چیه؟ این دین اسلامی که خداوند مکلف و چیه؟ میگه هو الاستسلام الله لله به توشید تسلیم شدن به خدا من با توشید منظور از این توشید چیه؟ چرا گفت تسلیم شدن با توشید؟ توشید ما قبلا تعریفش کردیم دیگه توشید یا توشید علمی داشتی و توشید عملی حالا به اعتبار دیگه توشید معرفت و اثبات و توشید قصد و طلب هر دو تا یکی هم. توحید علمی معرفت و اثبات توحید علمی یعنی اثبات شناخت خداوند و اثبات وجود خداوند یک تا دانستن خداوند توحید قصد و طلب همون توحید عملی هست یک تا قرار دادن خدا در اعمال ما هست در افعال مندگان اونجا در افعال خدا یک تا قرار دادن خدا در افعال خودش اینجا در افعال ما خدا رو یک تا قرار بدیم در توحید عملی در توحید الوهیت و توحید عبادات هیچ اختلافی هم در بحث اصلاحی نیست یعنی یک کسی میگه توحید الوهیت یک کسی میگه توحید عبادات یک کسی میگه توحید قصد و طلب قصد که همون بحث به نیت برمیگرده در عبادت‌های بدنی و طلب هم همون دعا هست یک کسی میگه توحید قصد و طلب و دیگری هم میگه توحید عملی در اعمال بندگان خدا را باید یک تا قرار بدیم حال اینجا تسلیم شدن به خداوند در چه نوع توحیدی منظور اینجا هست منظور این توحید چیه آیا توحید ربوبیته؟ یعنی همون توحید علمی؟ یا توحید عملی هست؟ توحید عملی هست؟ چرا توحید عملی چون دعوت انبیاتی نمیده؟ این مبحث شرحش خهم داد یعنی یکم جلوتر بخون بریم در بحث شهادتی فارکان الاسلام که میاد خمسة شهادت و ان لا اله اونجا بحث شرحش خهم داد فقط اینو من میخواد بگم که اسلام من اون چیزی که ما باید در مقابلش تصمیم خدا باشیم در بحث سرسره چون در بحث در بحث توحید و ربوبیت علمی محل اختلاف آنچنانه بله اختلاف بوده بعضی از اقوام که میگفتن ما ما خلقنا الا الده زمان ما را خلق کرده طبیعت ما را خلق کرده الان هم هستن تبعیون از کمونیست‌ها که میگن طبیعت خودشان اینطوری ما وجود بود تصادفی به وجود اومدین این تذکرات هست ولی ادعای خیلی تم بودن که این چنین ادعایی را کردند و پیامبران علیهم الصلاة والسلام اومدن آمدند برای اینکه عبادت را بهمون یاد بدن توحیدی که برای اشرف رساله شدن توحید عبادته و لقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت توحید عبادت این توحیدی هست این اسلامی هست که ان تسليم للمقابل توحيد هذه كيف ان درسه عليه الصلاه والسلام براي ام فرساده شده حرفي ام براي كه فرساده شده كه و من و من رسول لا اله الا أنا فاعبدون هیچ پیامبری نیست مگر دعوته بتوحيد براي دعوته بتوحيد لا انا فاعبدون مرابطه يعني عبادات بحث توحيد عبادته بس مراد التوحيد بحث كلمه توحيد بطور یا در یک سیاق در این جمله‌ای مثل این جمله این توحید توحید عبادت دعوت انبیا چون از باب لزوم توحید ربوبیت رو در بر می‌گیره توحید علمی رو در بر می‌گیره وقتی که میگه خدا را بپرست یعنی خدا را با یک تایی بگو قبول داشته باش که خدا را بپرستی اما اگر اصل دعوت را بگیم توحید و توحید علمی حالا خدا را بشناس و خدا را شناخت بچی بعد, بعد با کار بکنی آیا توحید اثبات توحید ربیت توحید علمی ایا توحید الوهیتو در دربار میگیره خیر ولی برعکس اگر دستور به توحید عبادت دادی از لزوم توحید ربوبیت و توحید علم رو در بر میگیره وقتی می خدا را پرست بس خدای با یک تایی قبول داشته باشه که او را بوزت پرستی پس اینجا میگه وهو الاستسلام الله لله بالتوحید الا مقصد این توحید دوباره گفتم شهر واحد من یکم مفصل تر از این والانقیاد له بالطاعه پس اسلام استسلام در مقابل خداوند با عبادت یا همون جا عبارت خود معلف با توفید این قیاد پایبندی با اطاعت باید دستورات فر باید فرمومدار فرم باشیم در مقابل دستورات خداوند. یعنی فرمومدار مطلق را خدابند بشماریم یعنی فقط خداوند باید فرمومداری بشه فقط خداوند باید اطاعت بشه فرمان او را باید بپذیریم یعنی اگر مخلوقی بهمون گفت فلان چیز حلاله دستوراتی که خدا حرام کرده و ازش اطاعت بکنیم اون را رب قرار دادیم این قبلا بحثش کردیم اتت اد احبارهم و رهبانهم ارباب من دون از خصوصیات رب چیه تشریع نباید بنده ای را در حلال و حرام شریک خدا قرار بدیم باید از خداوند از خداوند یک تا اطاعت بکنیم گفت حلاله گفت که حرامه بگیم چش یعنی در مقابل دستورات خداوند باید بگیم چش انقیاد در مقابل خداوند با اطاعت نه اینکه بگیم به درد این زمانه نمیخوره نمیدن به درد جامعه ما نمیخوره اطاعت در مقابل دستورات خدابندی لازمه چیه اسلامه اسلام پس اول تسلیم شدن با عبادت با اطاعت بعدی است همونطور که درشان نزوله اتخذوا احبارهم و رهبانهم ارباب من دون الله بعد از ابن حسم تو این نگاه رسالت میپرسه یا رسول الله ما اتخذناهم اربابا ما ارباب قرار گفت که مگر اونها اگر چیزی که خدا حرام کرده بود حلال میکردن شما حلالش گفت گفتاری فرمود تلکی عبادت و این عبادت هست شما دارید اونها رو می داشتید اطاعت از مخلوق در عصیان خالق چیه یک نوع عبادت اون شخصه و به درجه روبیت رسوندنشه رب قراردار اتخاذ احبارهم و رهبانهم اربابان رب قرارداران ایشان هست یعنی اون دلوقتي دلوقتي رو در نتیجه طرفدار دیگه رسوندیم این قلاحه هرچند که بحث این که آیا شرک اکبر و شرک 310 که اخر این برمیگرده به قص فاعل و اون فعلی که انجام داده میشه اینطوری نیست که اگر انسان از هوای نفس خودش اطاعت کرد معصیتی رو انجام بده حکم کفر اکبر شو بده اینطوری نیست الا اینکه شخص بگه قا به درد جامعه میخوره. یعنی شخص حکم خودشو بهتر از حکم خدا به شما داره بگه آقا مشمول اون زمانه است به درد این زمانه این بله کفرش کفر اکبره شرک شرک اکبره ولی اینکه شخص معصیت مشروب بخوره درسته که شرک در تاعط داره ولی اینکه ما از اسلام خارج نمیمونیم که میگیم اسلامش ناقصه این اسلام رو درست نفهمیده اسلام درست واسیه تسلیم شدن در مقابل خداوند با عبادت و با اطاعت با عبادت و با اطاعت این بندگی هست این بندگی هست و خداوند اینو از ما میخواهد در مقابل اسلام یا ایها الذين امنوا ادخلوا في السلم کافه یا ایها الذين امنوا ادخلوا في السلم کافه و لا تتبعوا خطوات الشیطان این ادخلوا في السلم کافه وارد اسلام بشید اسلام اینه اطاعت عبادات اطاعت و من الشرك الاهلی و براءه الشرك الا براءه الشرك بدل توزیه شرم داد این سه تا در یک مؤمن باشه این اسلام. در صورتی که این چیزها در مسلمان نباشه یا ناقص باشه اونجا هست که خلل در این اسلام آمده تا جایی که ناقص اسلام انجام نده که با اون از اسلام خارج بشه بحث ناقص اسلام دیگه بحث دیگری هست که انشالله بعداً توضیحش خواهیم داد پس اسلام تسلیم شدن در مقابل قدابند عبادت و اطاعت و همچنین براعت و من الشرك و اهله و براعت جسن از شرک وأهلش هم الشرك هم البوشريك قبلنا دار بعض البراءات ما توزي توزيه دادي في مسألة مسألة براءة بل يبقى قد يتوزي كجيك ميدام ناقوله بقدر إن كم مسألة جاب يوختي مسألة دار تكرار بيشك الجاب يوختي ما في واحد شف يبقى قد إن أيه رأيقله هذا في ذهنه فريد كمان من خصم توزيهش ميدام يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كاف ولا تتبعوا خطوات الشيطان يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كاف ای کسانی که ایمان آوردید، تمامی درهای اسلام رو در اسلام بشین، یعنی تمامی اسلام بهش پایبند بشید. ادخلوا یا ای الذين هم کلوا في سلم کافه. این کافه هم عبادت و هم ساعت و هم درات بر برمی‌گیره. این اسلامه. یعنی اسلام اینطوری نیست که یه شخص من مسلمان میشم، نمازام میخونم، دیگه جهاد نمی‌کنم. این براءت از شرک نیست. لازمه براءت از بغض و مبارزه با کفار. امرت ان تقتلوا. براءت یعنی چی؟ براءت از یعنی بغض بغض شرک و اهل شرک خیلی از عوام شد در این مسئله ایمانشو ناقص باشه خاطر همین بعد از مرتبه اسلام میاد میگه اسلام سمه و هو ثلاث و مراتب مرتبه اسلام ستاست اسلام خودش که اگر در یک جمله بیاد ما در بحث اسلام و ایمان چی داریم اسلام وقتی که به تنهایی بیاد معنای ایمان و احسان رو در میگیره و معنای خود اسلام یعنی اعمال ظاهری و اعمال باطنی ولی وقتی که با هم در یک جمله بیاد اسلام و ایمان اسلام یک معنا پیدا میکنه و ایمان معنای دیگر پیدا میکنه اسلام میشه اعمال ظاهری ایمان میشه اعمال باطنی این اسلامی که ما بهش دستور داده شدیم که تسلیم باشیم در مقابل خداوند با عبادت و اطاعت و براءت از شرک این این اسلام اسلامی هست که معنای اسلام و ایمان و احصار رو دربر میگیره ولی جمله ما بعدش که بعد مراتب اسلام رو یاد میکنه دیگه اینجا اسلام با ایمان دیگه معانیش فرق میکنه بحث براعت از شرک و اهلش ما قبلا بحث براعت از شرک و اهلش قصه ابراهیم رو داشتیم قبل بحث الشوت قول قضابان قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إن برااء منكم لا يشمعوا بأن هذا الإبراهيم أتباعش بحثي بقومش شهدفتا ما بريهاتهم إن برااء منكم براءة مشركين إن برااء منكم براءتني بغض مشرکین ان براءه منكم و ممن تعبدون من دون الله و درات و بغض اون چیزی که پرستیده میشه به از خداوند یعنی بغض اون شرک نه اون کسی که شریک خدا قرار دادنا مثلا نصارا چون عیسی را میپرستن دیگه بغض عیسی را نداشته باشیم بغض شرکشون بغض اهل شرک مشرکین و بغض شرکی که به خدا شریکی که به خدا قائل میشن وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَى بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ والبغضاء. براآت رؤى قلوبان كيف تفسير ميكونن؟ براآت أول قسمة بغضش بغض قلبيهات بغض قلبيهات كي ما قلبا اعلان براآت ميكونن ما منكم بعد. بعد اونها که ما دادیم داده شدیم که به اونها باید اقتدا بکنیم لازمه این بغض عدم دوست داشتن اعلان برایتیه و بدا بیننا و بینکم العداب دشمنی پرچه مبارزه و بدا بیننا و بین ما و شما این چیزی که خدا بند داره میگه قد کانت لکم عصوتون حسنتو ابراهیم اینی که از شما در ابراهیم در این مطحله برایت از شرک و اهل شرک ما باید بری باشیم از اونها و بیننا و بینكم العداق و البغضا عداوات و بغضا عداوت با چیه؟ امرتان و قاتل الناس حتی یشهد ان لا اله الا الله و محمد رسول الله این دخصود داده شده که ما باید مثل بعضی که دچار حدیمه نفسی یا دچار شکست نفسی اسلامی شدن حبیت یا شخصیت اسلامی دادن نه اسلام دینی نبوده که مبارزه بکنه اخوام را به زور وارد اسلام بکنه. نه اسلام فقط از خودش دفاع کرده اومده از, از خون مسلمانان دفاع بکنه از حوزه ایمون. نه خیر اینطوری نبوده اسلام. اسلام اومده که مبارزه بکنه با شرک شرک را نبود بکنه. مدر رسولان سالسلو فخش مکر شد بطار را نبود نکرد. بطخار رو نابود کرد ولی خب بحث اعداده اینطوری نیست که ما هم اینطوری سلمان پایین بندازیم بیگیم نه الله اکبر بریم شرط عزبین ببریم نمیدارم قبرسون رو خراب بکنیم مزار رو خراب بکنیم بطخار قرار خراب بکنیم خیل فسولا صلی الله علی وآلہ در عهد مکی چنین کاری انجام نداد وقتی خود به قدرت رسید وقتی که توان ازاله و توان از بین بردنشو داشت اون وقت بود که رسول الله صلوات علیه و سلام این کاری کرد این اینطوری نیست برائت به شر که کار غیر حکیمانه و خردمندانه انجام بشه که شخص بگه که آقا من مثل ابراهیم میرم بوت را قورت میکنم خیر شما ابراهیم نیستی و توانش هم نداری پیامبر خدا نیستی که مکلف این باشی شما باید دعوتتون حکیمانه باشه دعوتتون با بصیرت باشه ابراهیم خداوند تضمینش کرده بود کیو رحم کنه ولی شما که کی تاجمین که شما را رحم حس بکنه درست خداوند امنیت را برای شما برای شما گذاشته ولی اینطوری نیست که خراب بشه که شما معجزه بشه مثلا از زندان یا از زیر طناب اعدام مثلا شما را پایین بیاره اینطوری نیست که فکر بکنی شما به مثل عیسی علیه السلام شما را بالا ببره خداوند پس نیاز هست که ما عبرت بگیریم از سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم رسول الله هیچ وقت در مکه نمیتوترو خرد بکنه ما دستور داده نشدیم که در هر حالی با شق و مشکیم. می... بله ما همطور که ما میدونیم می بعد در بحث انکار من کرد اگر میتونید با دست اگر نتونستید با زبان نتونید دیگه با قلب بازار که اوبول ایمان این دیگه ضیف سر ایمانه. لازم نیست که همیشه با دست باشه همیشه با گفتار باشه جایی میشه با قلب قتون تو توانش انجام یا توانش داره ولی که شرزی بدتر از اون ایجاد میشه. یک بودوت خراب کردی، صد نفر رو میکشه. دیگه این درأت الشرك اینطوری نیست که انسان هر دلش خاص بدون تدبیر بدون اینکه رهبریت اسلامی پشت صحنه باشه شخص خودش تکی بره بگه که من به مبارزه میکنم نه دیگه شرع ما امام قرار داده رهبر قرار داده که پشت اون بجنگیم اینطوری نیست که هر کسی به خودش بجنگه الامام جننه يستجنب به ويقاتل من وراءه امام الامام جننه امام یعنی امام برای امام قرار دوشده رهبر رهبر اسلامی سپری هست که پشت اون باید بجنگیم یعنی باید رهبریت اسلامی باشه یک یعنی اینجوری نباشه که یک گروهی برای خودشون مسلمان پیدا بشن بگن ما نمیدارم یک گروهی تشکیل میدیم میریم و با شرکت مشرکی میجنگیم نه باید رهبریت اسلامی باشه حالا میخواد در حوزه یک کشور باشه یک اقلیمی باشه یک جایگاه خاصی باشه اینطوری نیست که در هر کشور یک اشخاصی برای خودشون پایگاهی بزنن و انقلابی راجیا گروها تشکیل بدن که بخوان افساد بکنن یک شرکی را بخوان از زمین ببرن هزاران نفر را زیر پا بگذارن و هزاران نفر را به کشتار بدن این از اسلام درست نیست پس لازمه این براءتی که اینجا خداوند از من خواسته که لازمه اسلام والبراءه من و اهله اینجا خداوند ما این آیه شرح میده الگوی ما ابراهیم و اونهایی که با ابراهیم بودن در بغض مشرکین و دشمنی با مشرکین دشمنی فکر که این دشمنی دیگه الان مشرک دیدید دیگه چهرهتون عبوس بکنید حالا این گناهکاره این مشرک حالا خدا از من خواسته که من بغض مشرک داشته باشم خیر رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر بغض یهود رو داشت ولی که اگر بچش مریض بود میرفت به عیادتش غذا می‌فرستاد برای یهود اینجوری نبود رسول الله صلی الله علیه و سلام که می مقاطعه بکنه قطع رابطه کلی با یهود بکنه بله رسول الله صلی الله علیه و میگه اگر در راه دیدید یهود رو یا غیر مشرکین رو در راه دیدید راه رو تنگ بکنید یعنی راه رو برایشون باز نکنید که شما به احترام اونها مثلا در راه رو باز بکنید یعنی شما هیچ‌وقت خودت رو کوچک و کم نشمارید شما مسلمانی شما عزیزی هر چند شما شاید مستضعف روی زمین باشید هیچ‌وقت با احساس حقارت نکنید راه خودتون رو برید ولی که ما باید نباید طراموش بکنیم که این رفتارها با هم متناقض نیستند یعنی ما از یه طرفی رسول الله صلی الله علیه وسلم بهم به میگن راه را راه را را قوت را کج نکنید که یهود را میبینی راه خودت را, را ادامه بدید عزت نفس داشته باشید جای دیگر رسول الله صلی الله علیه وسلم به عیادت مریض یهودی میره غذا رو میفرسته اینها دو تا با هم تناقض نداره چون اون قسمتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم راستار نیگ را با دشمن خودش داره میخواد اونها را دعوت بده بغض قلبی داره بغض قلبی بغض عملی نیست که شما بگید آقا من چون بغض یهودو دارم کتکش رو میزنم یا مثلا چهرم رو عبوس میکنم خیر، این دعوته نادرسته الا اینکه قوم اون در جنگ باشه نبرد باشه دیگه شمشیرها، بلند شده یا مثلا از روی هم بلند کردیم اونجا دیگه اون دشمنی دیگر هست که اون دشمنی قلبی تبدیل میشه به مقاتله به معادات که ما گفتیم این همه لوازه براعته ولی لازم نیست که هر باهم باش پس اسلام تسلیم شدن در مقابل خداون با توشید یعنی با عبادت و اطاعت و دراعت از شرک و اهلش اما اسلام اسلامی که در حدیث جبرئیر اومده شما میدونی حدیث جبرئیل علیه السلام وقتی اومد پا و پای پای رسولان زنوب زنیر رسولان صلی الله علیه وسلم نشست اومد که دین را یاد بده و مسلمانه و رسولان صلی اللہ علیه وسلم فرمودن آخر حدیث که این جبرایی بود اماده که دین خدا را به شما یاد بده درسته؟ دي جاکم لیعلمكم دینکم دین شما را به شما یاد بده این دین چون الان تعریف اسلام را کردیم الان میخوام دین دین اسلام این دین اسلام چیه؟ یک اسمتش اسلامه اسلام چیه؟ و هو ثلاث مراتب الاسلام والایمان والاحسان و كل مرتبه لها ارکان هر کدوم دینه مراتب داره که انشالله تک اینها خواهد امال مرتبه اسلام و ایمان و ا فَأَرْكَانِ الْإِسْلَامِ إن دين اسلام ألم يلي برده دين إسلام مشي دين إسلام أرْكَان الشيء كلا أُن جابت مفتسلان قفتين كده تعريف السباح الشيء الآن أرْكَانِ دين اسلام شيء أرْكَانِ دين إسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإتاء الزكاة وصوم رمضان وحج, وحج بيت الله للحرام شهادتين تفسير شهادتين فهدومات اول اینکه شهادتین بگیم دوم اینکه نماز بخونیم سوم اینکه زکات رو بدیم چهارم اینکه روزه مزار رو بگیریم و پنجم اینکه حج خانه خدا رو انجام بدیم این پنج تا رکن ارکان ظاهری هست اون اعمال ظاهری هست که در مقابل خداوند باید انجام بدیم فدلیل الشهاده قوله تعالی شهد الله انه لا اله الا انا الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط شهد الله انه لا اله الا هو. اینجا خداوند در این آیه این آیه استناد میکنه به شهادت. و اشهد الله الا اله این شهادتی با چوبینه باشه و معنای این شهادت چیه؟ شهادت میگه با معنا هلا معبود به الا الله. و بیات میت تفسیر میکنه معنای این لا معبود به حق دیگه خداوند خودش दावा میده برش برای این کلمه توحید لا اله الا هو. ملائكه هم گواه میدن به اولو العلم مبعلقوا و مک و اولو العلم قائما بالقسم گواه میدن بر اینکه خداوند لا اله الا هو العزيز الحكيم اینکه خداوند لا اله الا هو هست لا معبود به حق این گواه اهل علمه الان گواه کتور بوده چه تفاصیلی بر این کلمه کلمه هست من فقط امشب خلاصش میگم فردا شب ان شاء الله این خواهم گفت که چه تعاریفی شده در بحث کلمه توحید و چه برداشته شده و چرا اینجا الان اون چیزی که مهمه الان که بحث و خاتمه بواهش میدیم چرا مؤلف اینجا لا به حق را انتخاب کرد چرا اینجنی تفسیر را بر کلمه شهادت این گفت که شهادت خداوند برش شهید الله انه لا اله الا الله و شهادت ملائکه است و شهادت اهل ال برش است چرا تفسیر از این کلمه توحیدی که دوای خداوند و ملائکه و اهل علم چرا گفت لا به بحق اینو ما اگر دقت به قرآن داشته باشیم به این نتیجه ما میرسیم اگر دقت به قرآن داشتیم و دعوت انبیایی که خداوند در قرآن وده. اومده مثلا فرموده خداوند من لقد ارسلن نوحا الى قومی نوح را فرستادیم برای قومش فقال ای قوم عبود الله ای قوم خدا را بپرسید چون ما به طور کلی داشتیم دعوت تمامی پیامبران دعوت به عبادت بوده. و لقد بعثن پی کل امت رسولا دعوت تمامی انبیا این بوده. و ما ارسلنا من رسول بام هم میتون این آیه هم بازم هم میتون که خداوند بي میگوید که ما فرستادیم برای سوره ال انا فقط فقد من رو ترسی. الان تک تک انبیا خداوند یادشون میتون در سوره مؤمنون تک تک انبیا از نوح گرفته، شعیب گرفته، ابراهیم و دیگر پیامبران خداوند دعوتشون چی بوده؟ لقد ارسلنا نوحا الى قومی فقال يا قوم اعبدوا الله. نوع را که بگه ای قوم خدا را بپرسید. ما لکم من الهین غیره. الهی جز. یعنی اله یعنی چی؟ معبود. چون بحث عبود. قوم عبود الله. الله را عبادت بکنید. چرا الله را عبادت بکنید؟ چون اله باید معلوه بشه. باید معبود بشه. تفسیر این عبادت. تفسیر این اله چی شده در آیه ق... در همین آیه در, در جمله قبلیش؟ تفسیر به عبادت شده. چون الهتون یکیه باید اون اله برکت بشه. پس اینجا خبر الله. که اینجا میگه لا اله نافیه هست. نافیان جمعه ما یعباد. لا نافیه هست. حالا این خبر الله چی میتونه باشه؟ لا باید خبر داشته باشه. لا چی؟ لا تفعل چی, چی را انجام ندهیم. لا الهه لا الهه اله چی؟ لا الهه موجودن. لا الهه خالقن. لا الهه رازقن. لا الهه معبدن. یعنی چی لا اله خبر این الله چیه؟ چی نیست؟ اله چی نیست؟ این خدا چی نیست؟ معبود نیست. هیچ اله معبودی نیست. هیچ اله که بعد اثبات میاد دیگه بعد از اون الا الله. چی میخواد ثابت بکنه؟ میخواد ثابت بکنه اینجا با یک ای کلمه تشهید لا اله الا الله. اینی که خداوند معبوده یا اینکه خداوند موجوده یا اینکه خداوند خالقه. اینا را به جلسه بعد میذاریم. اون چیزی که مهمه. مؤلف معبود را همینطوری از ذهن خودش نیاورده دلالت قرآن به دعوت انبیا و دلالت که در فرموده خداوند در سوره مؤمنون آیه 23 لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله الله رب الله رب چرا چون الهی دیگر ندارید پس اله, اله تفسیر شده به به معبود به اینکه باید پرستیده بشه و اینکه به حق فرموده خداوند ذلك بان الله هو الحق خداوند به حق وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هو الباطل غيرت خدا من اون چيزی میشه پرستیده میشه باطله بحق نیست كون آلهه ها یا اون اله ها خدایانی که پرستیده میشود اجعل الاله ها اله واحده قبول الله اله اله یک معبود که صداش بزنن فريادش بزنن شریک بین خودش خدا قرار بدن ما ما نعبوده اونا رو نیف برسیم مگر کچی ما را به خدای یکتو نزیگ بکنم خدا را که برون یکتو قبول داشت قل من ما فس موات و عدل یا قولن الله را قبول داشت برون که ما دون اونها آلهی دیگر خدایان دیگر واسطه های بدن خودشون میگود هاولئی شفاعون ها شفیع ما هستن ما را به خدا نزیگ میکنم پس اینجا تفسیر صحیح از این کلمه توحید خداوند گواه میده و ملائکی گواه دادن و همچنین اهل علم اینه که معبوده به حقی نیست جز خداوند یک تا که باید پرستده بشه بگه انشاء الله ادامه بحث و برای جلسه بید و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین صل الله علی محمد و علی عالم حمد.